اشتغال، مشغول شد، مستشفه، بیمارستان، غرفت العملیات، اتاق عمل، اجهزت انعاش دستگاه های احیا، شارژ شارج می کند. اشتغال شخصون في مستشفه في غرفت و من تاریخ زادت حالات الوفاه و حققوا في فی الامر وجدو انه یفصیل اجهزه الانعاش ليشحن جواله فردی در اتاق عمل بیمارستان مشغول به کار میشه و از تاریخی که استخدام میشه موارد فوتی افزایش پیدا میکنه وقتی در مورد موضوع تحقیق می کنند متوجه می شن که او دستگاه های احیا را از برق جدا می کنه تا تلفن همراهش رو شارژ کنه.